یک سال دیگه گذشت و آقاش بد اونختر و نامهربونتر شد هفته خواهر و برادراشم انگار زری رو نمی دیدن. انگار اصلا زری وجود نداشت آقاش صبح کلی سهر می و شب برمیگشت. می گشت. زری حتی تو کوچه هم نمی رفت آخه بچه های محل دورش می و به پیراهن گشاد و روسری کجش می خندیدن و هش می کردن و می خوندن.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 باید از شهرتی ربوجریزی باید باغ سهاد راومیزی من از دست خمید من از دست خمید عزیزم چه مشکل به بردم جان چه مشکل به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 شکلی دیگر برمیخیزم امروز هم چشمان تو چه توفانیست. این پاییز در شهر موی تو طولانیست تو هر قصه ایجا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 و هم شده بود ملکه ی قصر پادشاه پاییس قصری که توش همه براش کل میکشیدن و آواز می خوندن. من از جنگل می گذشتم قبار قروم بروی درختان فرو می نشست و باد قریب عبوس از بره افشاخه ها می گذشت و سر در په بگ ها می و در چشم برگی که خاموش خاموش میسوخ نگاهی که نفریم باییز میگن خزان بود، طریق خزان بود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 شبرونو افتم و در گوش برگی که خاموش میسوخت گفتم همسوزین چونین گردم در خود وس مپیچین چونین تو در خود مپیچ که یار بی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 پا اگر زرد و پش ایم ولی دل به پاییز نس پرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده اگر داغ دل بود ما دیده ایم. اگر خون دل بود ما خورده اگر دل دلیل است آورده ایم. اگر داغ شرط است ما برده اگر دشنه دشمنان گردنیم اگر خنجر دوستان گرده گواهی بخواهید اینک گواه همین زخمهایی که نش دل دلی سر و سری سر از این دست عمری سر سردو پشمرده ای ولی دل به پایز پا نس برده ای چ خالی لب پنجره پر از خاطرات تَرک خورده ای سر و پو‌و اگر سا تو پشمرده ای ولی دل به پایز پا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 اگر دل دل بود ما دیره ایم اگر خون دل بود اگر دل دلیل است آورده اگر دل در دشنه دشمنان کردنیم اگر خنجر دوستان برده ایم گواهی بخواهی دینک با همین زند که نش مرده دلی سر بلند و سری سر از این دست امی به سر برده ایم جایی سر سری